این جمع اکابر که مناسب دارند، از قصه و غمز جان خود بیزارند، وان کس که اسیر حرص چونیشان نیست، و این که آدمیش می نشمارند. این چرخ جفا پیشه عالی بنیاد، هرگز گره کار کسی را نگوشاد، هجا که دلی دید که داغی دارد، داغ دگری بر سر آن داغ نهاد. افسوس که نامه جبانی طی شد، وین تازه بهار شادمانی طی شد، آن مرغ طرب که نام او بود شباب، بریاد ندانم که کی آمد کی شد. با این دو سنادان که جهان دارانند، از جه که دانای جهانی شانند، خوش باش که از خرمیشان به مثل، هر کون خرست کافرش میدانند